صف 20 از دستور استاد جانفری اینه یا اعتباری <تصفيق> و مثال میدن به ضربه تعدیب یا ضربه لیجاز اینها رو صاحب حضور قابل بینیت در قالب ندارن از نظر ظاهریه عبره نمی باشه برابری مونا باشه صاحب حضور مونا نمون آقاشی که قاعد بشه به این که حسنوبوب از نمیتونه ذاتی باشه چرا حسنوبوب ذاتی داریم؟ منتها در باب حسن حسنوبوب ذاتی نیست نظرش اینی که حسنوبوب اقتضاییه منطقه تعبیرش اینی که اعتباریه حتی تعبیراتش هم مستلمه بهتا نظریه یه اصلیشون اینه که حسنوبوب اقتضاییه و آخرش هم قرمون یظهر ان التلجي على الحرام في مكروهات لوغيه اشد من الحجر على الحرام في بواحات واقعيه هر مقصد در اون قليل انجام دادیم بیشتر باشه خوبه بیشتر. هر اون تلجيش درشه هرچی مقصده اون قليل انجام دادیم اتفاق افتادگان هر باشه اون تلجي کمتر میشه. و بعضی از موارد شهر دستان تجربی قومش از دست بده مثل مواردی ما در زن این تجربی این واطب تبسری را اتیان کرده باشه و ممکن که نوانی به واجبات واقعی ما هون اقوام جهات ها و جهات تجربی در واجبات واقعی هم اون جهت اقوام و ملاحظه میمونه آیا قوم تجربی در این موارد بیشتر یا حسن اون واجب واقعی یاده اگر جهت حسن فیل در واقع اقوا از جهت قفه تجربی باشه یعنی تجربی ما مصادف بشه با یک واجب معلکت واقعی در اون موارف قفه شد دست میه یک از به انکسار ایشون در این و اشکال مبنایی که روز گفتیم برایشون وارده اینه که تست و انکسار در اعتباریات راه نداره اختصاص به تجریمیات داره و هم به اعتباری داره مدار روزوی دردن می نشکتن می سند حالا من به علم کلام می شدم حالی هده حالا منعبشه مصنف نسبت به نظر یه سال اول این که شده به این که بقیه ذاتی زاتینی این رو مصنف میگه ما قبول نداری قبه تجربی سغربیان ذاتیه هم قائل رو حسن قبه ذاتی هست و هم که قبه تجربی رو از مساده ذاتی میتونه یردو علیه اولم من و او من عدم کون قبه تجربی ذاتیان. این اومدی گفت که قبه ذاتی نیست ممنوعه. باید هم ذاتی باشه لطن تجربی اول مولا الحکیم قبیه هون ذاتن قبیه ذاتن کسی نیمتونه بکنه این تمروز و توقیان و اصیان نه هم از یک واضیه یعنی اصیان با تجربی با تمروز فرقی نداره ما بیاییم بین تجربی و اصیان فرق بزنیم این فرق موجود نداره تجربی اون حالت نفسانیه با محصیت و تمروز ایش فرق نداره بنابراین قبع افزادی سوا اون کانه لنفس الفل این قبه ذاتی مال خود فعل باشه کما علیه مشهور این رضا کنه دارونم سوا اون کانه اون قب لنفس الفل کما علیه مشهور که میگن قبه در واقع تجربی مال فعل و قبه فعلی داره هستن ولو آب خورده همین آب خوردنش از شراب خوردن بدتره قبه شعلیه سوانگان القبه مترتبا مترتبن على نفس نفسه او لکشفی انکونهی جریع هم یا نه قبه مال فعل نیست گفه مال فائله این حال من کاشف از قبه ذاتی من بود گفه فائلی من بود سوء من بود و برمی گرده به خودش اول کشفی علاقونهی جلیع انحلان مولان کما قبل ویناه که تیشون قاعده به این که قبهش قاعدیه بلا با تحریان از ظلم بعده بود قسم ممن از ظلم بنابراین قبهش ذاتیه از ظلم یا این که قسمی از ظلمه یا خودش فردی از افراد ظلمه یا قنوان ظلم رو داره فرقی نداره حالا این تحبیل مستنیدی که قائل شده به این که که از ظلم حالا بعضی نصفه ها نداره اینا بله و بخست مومن از ظلم این داخل پرامتز بمونه این نیاز توضیح داره شاید یک چیل از سه بخونه تر بابیدناش باید تحبه چرا ایشون گفتی این که از ظلم بله و بخست مومن از ظلم از نظر بحث در قائلی از نقوم شاید یک سوز دور که شما اینو باید بحث کنید. و یمتن و اروز و صفت محسنت بنابراین وقت قبش ذاتیه یک درصد قویه دیگه یک درصد هم جانمونده تا یک جهت محسنه برش آرز بشه اینو قبش کنه ولو اندازه یک درصد این ذاتیه و ذاتی لا یعندل لا یتغیر لا یخفلل دایه تخلل تمام احکام ذاتی برای کار میشه و یمتنه و وقتی قبع تجربی ذاتی باشه ممکنه روز یک صفت محسنی که تجربی رو از قبعش به حسن برسونه و پی مقابلهی الانقیاد لله سبحانه هم. در مقابل تجربی هم انقیاد هم همینجور حسن مطلقه حسن ذاتی داره هیچی حت مقدهی پیدا نمیشه برده این انقیاد ولی بده این اطاعت شما در این حد که بهش انقیاد اصطلاحی گفته میشه این یک جهت خوبهی درش پیدا میشه بخواد اینکه حسنش ذاتیه و به مقابل تجربی از این برای تقریب به ها میگه تجربی چون در مقابل انقیاده بنابرای در انقیاد یک جهت خوبهی نیست که شخصی نه تنها اوامر ساده یه رو امتصال میکنه عوامر احتمالی هم اومده امتصال کرده این اصلا گوهی نیست حسن مطلقه اون چطور حسن ایسادیه اینم مقابل اون گوهی ذاتیه اون تقابل دارن من گفتم که یک روز طول می کشه این بالاتر از این هاز. ایشون یک کلمه به صورت مثال تشکیه ها برده ولی حرف زیاد داره یعنی این خود تداخل میشه من میخوام از حرف سال خصول خالق بشیم بعد دو تا جهات رو بحث کنیم یکی از جهات همینه از ظلم بلا و قسم من از ظلم مبنای اختلافی در این کلام هست و اون خاطر رو نمیشه با اینطور تو بحثا موضوع برای این حالا مخالف با ممناش باشه یا نباشه ماها یه مبنایی مثلا قبول این بعد چیزی رو میگم بابا اولش شاید شایدم واقعا اینطور نباشه ما الان میگم آقا تفصیل بین قوه فعلی و فاعلی مال محقق نوعینیه ایشون اصلا خوب نیرو شاید شایدم اینطور ما چی میدونیم شاید هم اون تعبیراتش خاصره یعنی شاید قوه فعلی فایده خود مصنفم واقعا من چی میدونم علم قیب هم که ندارم بعد شروع هوا که هر کسی یه طوری می نویسه. اضافه یک نحوی موبایدین ها رو و رو مصادرم باشه قبولش کنیم حالا اشتاری از شما هست بمونه تا اون که از ظلم من مهمه کنم اگه باشه در این <تصفيق> به این نحوی که ناینی مطرح کرده نه مطرح نکرده گفته سوء سرینده شخص پای <تصفيق> استحقاق اقاب رو گفته استحقاق اقاب رو گفته نه قبع ما بحثمون در قبه و حرمت و استحقاق نه فراد سه تا مقامه مقام قبع رفته مقام استحقاق نداره حالا من میگم محتمله محتمل قبع قائلی اصلا نظریه خود شیخ بوده ولی نائینی اومده تصدیح کرده شاید احتمال داره ما علم دهید که نداریم ما بناس یه مبانی از اینا بفهمیم یه مبانی خودمون پیدا کنیم واقعا ما این مقیب نداریم این همه همون فتح عملی رو در رسائل و مکاسب کفای معنا میکنن بیگن معمشی نه. واقعا معمشون چی میدونیم هر کسی میگه معناش. و فی مقا هر طور درس شیخ بودن فتح رو هر کدوم یه طور معنا میکنن هر کدومشون دلیل نمیشه و فی مق نه، سبحانه فنهو یمیتنو ان یا روزلهو جهتون مقبه قنابانی نمیشتون آرز بشن اون حسنش ذاتی اگه ذاتی باشه نوبت که هیچی اگر شما قبول کردین که یک چیز قبه ذاتی داره حسن ذاتی داره یک کار تمامه جهات مقبه و محسنه نداریم یک مطلب در اون که از ظلمه که نیاز به توضیح داره یک روز وقت میداره یکی هم مسئله وقتی مقابلهی ای انقیاد این تقابل رو ولو همه قبول دارن غیر قابل قبوله به خاطر تجربی انقیاد الزامیست انقیادیش لزومی درش نیست ولی تجربی لزومن باید ترک بشه چیزی که لزومن باید ترک بشه انقیادی که لزومن لازم نیست ما انجام بدیم الزامی درش نیست چه تقابلی داره تقابل باید اگه باشه تجربه دوزومیه انقیاد هم دوزومی باشه با اینکه انقیاد دوزومی نیست این توابول هم در کار نیست اونم در ضمن همون بحثه که از زون او و قسم من از بحث بحثی کنی تجربه دوزومیه دوزومن نباید تجربه کنید دیگه شما لازمه واجب عقلا شرعن تمرد نکنید تجربه نکنید. ولی آیا لازم عقلا شرعن انقیاد کنید نه؟ الزامی شیست بنابراین خودش مصادره میشه مصادره مطلوبه اصل لزوم در انقیاد اصلا نیست دیره ارتکازیه کسی نمیتونه بگه آقا انقیاد دوزومیه اوه ولی تجربی لزومیه شخص نباید تمرد بکنه ولی آیا باید انقیاد داشته باشه نه این رو بخت ذاتی مصدره الهی میخواد بگه در مقابل اینکه این قوف ذاتی اینا استفاده از اون تقابل گرفته. وقتی اون تقابل شما به هم بزنین معلوم میشه که هستش قوفش نمیتونه ذاتی باشه. ذاتی نیست. به اختیار منه. من خودم اختیار کردم. کسی بالا سر من که نگرفته بود. این انقیاء اختیاریه. وقت تجری از اختیار خارج بشه، اونایی که میگن قوف ذاتیه مم. یعنی از اختیار تو خارج با چه تقابلی با این غیادداری که کاملا در اختیار من بوده بحثش دقیق‌تر از اینه حالا بحث میکنیم دو تا بحث عمده داریم مبنائیه شما رو قبول ندارین نه ما میگیم واقعیت که نه این واقعیت اینه به این واقعیتی که همه بهش باید تبیین کنید و قابل تبیین که انقیاد لزومی نیست در اختیار منه به اختیار خودم پایی کندم نماز مستحب بخوندم ولی نماز ظهر اینطور نیست لزومیه. تو قابل نه ده بود مخالف باقدر. گذرا که خط موضوعیت داشته باش ما همه بحثا مون در بحث تاریخی بحث تاریخیه خب تاریخی دیگه در از گفتیم میگیم تاریخی با خب بونجدان چرا قالب ذاتی شدن در انقراض ذاتی نباید باشه و خیلی در علم کلام میگن انقراض حسنش نمیتونه ذاتی باشه چون به اختیار خودشام اختیار درش شخصیه و تمام بحثا الان این تمام بحثا در این مرحله میخواد مرتبط بشه به بحث اختیار شخص با اختیارش این کار کردی یا نکرد یعنی دقیق تر از این طرف حالا بحث میکنه که از نوعی که بحث کنیم و انقراض هم معلوم شد. این یک اشتال که قبه تجربی ذاتیه چرا نارخصوصی ذاتی میمونه پس یک مناقشه صغروی بوده و جوابیشون هم صغروی است و ثانیا ان هو و سن اگر کسی احماس کنه از جواب اول و بگه قبه تجربی ذاتی نیست و میتونه جهات محسنه برش آرز بشه دوصدند مع نهو لا امتننا یا زه تبی جهت محسن لهو میتونونه روی جهات محسن یا این تحسییلنشکنه و این خوب باشه لا که نهو با معلم یا لهو جهات. یعنی اگر کسی قایل بشه به اینکه نه این از موارد ذاتی نیست چون سه مرتبه داره دیگه قبه ذاتی قبه اختضایی قبه اعتباری صاحب بسول که میگه ذاتی نیست چرا رفته پریده به ثبومی دومی رو دو دو باید قایل بشه باید قایل بشه اینکه قبه اختضاییه نه اینکه اعتباریه چرا گفته به وجوه ولی اعتبارات چرا اسم سوم رو گفته اگه این از موارد ظلم نیست چرا از موارد که نباشه از موارد زرد چرا گرفتیم به وجود ولی بله اعتبارات گرفته وقتی انکار میتونه تا اسم اول رو چرا قاید به قسم دوم نشه قاید به قسم شده گفتیم این اعتباریه با اینکه گفتیم نظر واقعی تار دومیه، ولی تعبیرش ثبامیه یعنی گفته به وجود ولی بله اعتبارات یعنی قسم ثبامیه که در اصول مزفر خوندید؟ رضا اگر این طور باشه اشتال شیخ که اگر کسی بناس مناقشه کنه در ذاتی بودن لاجرم باید قائل بشه به اختضایی بودن نه اینکه که ما از ذاتی به به ثقومی آره مرتبه داره دیگه به خاطر این هم مراتبش عقلیه اگر ما قاهل به نفسی ذاتیت بشیم نمیتونیم اعتباریت رو اثبات کنیم این واسطه نیمونه شما یا باید هر دو رو نفیش کنی که عباراتی ساخت هر دو رو نفیش نکرد نوبت برسه به ثومی اومده ولی رو نفیش کرده اولی رو نفیش بکنی دومی الان ثابت ان نصل الى النولين تنوع يعرض ذلواجهات محسنه لكن نبو كان على قبيل ما لم يعرض له تلك الجهت باید اینطوری قاید بشین که اگر اولی دو ما قاید نیستیم این از قسم دوم میشه از باب قبه اختیزایی میشه و تا یک جهت محسن نیاد قبهش بابی یعنی با نفیه ذاتی نمیتونیم نمیتونیم رو نفیه کنیم. چون در جسم اولی بلیه قبهش در جسم دوم اختیزاییه یعنی مختزی هر تجربی مقتضی قبه یعنی نوت درزددفتاد درزددفتاد درزدفتاد قبهو داره وگرمی یه جهتی یاد این ا در قسم سوم مثلا قبه نداره قبهش منده به یک عمر خارجی اگر ایشون اومده نفی ذاتیت کرده نفعی ذاتیت نفی قبه نمی کنه. چون منر ممکن که قبهش اختضایی باشه پس سایفوسوی میخواد با نفعی ذاتیت نفی اصل قبه بکنه این نمیشه چون قایل شدن به قسم سوم یعنی نفعی اصل قبه و ای نداره خوبه به خاطر چیزهای خارجیه خود تجری با آب خوردنش فرق نداره مصنف این طور نیست با نفی ذاتیت نمیشه نفتی اصل به خوبه بکنی شما واسطه داره و واسطه معلوم میشه ذهن مصنف چقدر دلیله دلیل سر ساعت خصوله میگه شما اومدی شیر مالیدی بر سر همه اعلامت اصولیه به اینکه این نفعی ذاتیت کردی بنابراین اعتباریت ثابته نه اینطور نیست نفی ذاتیت دید از نفی اصل قبهشه چون اگه نفی ذاتیت کردی مختزیش میمونه شاید اقتضایی شاید بسته دومه ما بیان بگیم اگه این قبهش ذاتی نیست یعنی اصلا قبه نداره یا نه قبهش اختضاییه خب احتمال داره دومی باشه از ساعت حضور به مرام خودش نرسی با نفی ذاتیت، نفسی اصل قوه از قذب نمیشه. قبول نه، قابل رو نمی‌شه، نمی‌شه تمام میشه. چی؟ چرا قبول ندید؟ چرا رسم قائل؟ چرا اسم قائل؟ با مخاطب من گفتم که ایشون نظر اصلیش ابتداییه، تعبیر سال اصول قاصد. نباید میگفت به وجوه ولی باید و این دیگه اقتضاییه و این داده اومده اختزایی رو تثبیتش کرده به خاطر اینکه اومده گفته یک جهت محسنه میاد رو بر میداره این جهت موعظنه رافه رافجی بر داره اختزای مقتضی رو بر داره و اگر از باب تعدیب باشه یا ایزا باشه از باب خوردن آب باشه از باب ندیدن زرق باشه اون دیگه رافه نمیخواد چون اساسا اصلا نداره آب چه وقتی قبی نداره رافه برای چی بیاست جهت معصنه رو برای چی میخوایم وقتی صاحب خصوص میگه ذاتی نیست یعنی قسم ثومه قسم سر که ذاتاً قبی نداره اساساً هم قبی نداره مثل آب خوردنه. وقتی مثل آب خوردنه ما رافه رو را برای چی می‌خویم مثلا جهت معصنه رو برای چی می‌خویم این که برای جهت معصنه میخوایم، این می‌خواد که رافع باشه رافه برای چی میاد برای رفع اقتضای مختزی میاد بنابراین تغییر ساعت خصول اصلا دقیقی نیست دقیقی نیست این نظر دوباره میخواد بگه بگید برگوی جوحی وقت اعتباره باید بگه نه احوازاتی نیست اعتباری باست اجازه دادن که رو بحث میکنن نظرا الى مر محارضه خیلی جهات اگر ببین آره داره میگه اصلا بحث معارضه خوب فکر از بسته بلوجو اعتبار ببین تعدید میکنه قبل بحث نباید بگه ببین ما هزار ساله داریم میبینیم از زمان شیخ توسی وقتی میخوان بگن خوب اعتباری میگن بلوجو ول اعتبار اصلا تعدیدات اصلاحات برینه نمیشه تو از بیاد یه نه من اصطلاح عوض کردم گویا اشتباه اصطلاح یکی ازی عوض بکنه ولی بگه منش درا بر ف... خلاف اصطلاح نمیذان مشقوره وقتی میگن بلوجوده ولی اعتبار یه یعنی قسمت دوم اصلافه نمیخواد رافه گفته حتما میخواد یعنی قسمت دومو داره میگه قسم دوم رو ما نمیتونیم بلوجوده ولی اعتبار بنویسیم الان از هر کسی این پذیرفته باشه از صاحب‌حضور پذیرفتنی نیست بخاطر اون خیلی دقیقه چرا اینطوری تعبیر کرده در حقی عبارتش وارفته که مصنف هم ایراد میگیر حالا کسی نیست که دیگر می نقاط دقیق ایراد میگیر میدن مصنف کاری نداره ولی در اینجا که خیلی غلطش فاهش این تعبیر یعنی یک تحبیر کاملا فاحش که نباید اینطور باشه برخلاف اصطداع متقدمی اصولی که ما دنبال رافه میگردی رافه مال قسم دوم. نه این هم که داریم میگین تعبیرات خود مسننف الان در بحر الفواهی در اوسر اونام این زبان خود شیخن دارن میگن شیخ هم همین تعبیرات رو در هر که ساعت خصوص بکار بوده این بحر الفواهی که نمی نسی. و ما میخوایم حرف مصنف به کرسی بشینه میگه اختزایی به این اختزایی بودن خیلی مهمه میگه از کسی قاعده به نفس ذاتیت بشه نمیتونه نافی از چه قوه تجربی باشه اصلا با قسمت دوم قاعده بشه الان ما میتونیم تمام احوال رو تبیینش کنیم، توضیحش کنیم. من صاحب اصول و هم مصنفم. مثلا تعبیری که شیخ طبرودی ما می‌خواد این چی میخواد بگه؟ مصنف میگه با عو... نقد اولی به ثومی نمیشه رسید. حتما ما به دومیه باشه، تمام که صاحب اصول قاله به دومیه. چرا چون دنبال رافه می‌گرده. و همیشه این مطلقا قائلینه. هر کجا بحث رافه باشه، یعنی مقتضی، قاله به اقتضاد و این لگه باید نبود این دنبال رافه نمیگرش اصلا رافه نمیخواد ما برای این... چی بگیم جهت محسنی میخواد جهت مقبلی میخواد هیچ کدام نمیخواد بخواد که ما اصلا افتضایی نمیگونیم ما اینا اعتباری رو اعتباری میگونیم مختبیر باید افتضا هستن به هم اعتباری اگه ببینید اهم دایر مدار دو چیزه من نمیتونم زاویه نفس الامر بکنم چون نبودم زمان اثار قصور و, و مصنف با... یا قائل به اعتباری نباید به جهت مقبه محسن بیخوند یا قائل به دومی نباید تعبیر کنه به وجود و اعتبار علا کل تقدیر یک اشقال بر حضور وارده هر کدو میشه به تقدیر برای اشقال وارد مصنفی نمیخواد بگه ولیسم ما لا یورزوا لَهُ نفسی نَفْسِهِ حُسْنٌ وَلَا قُبْهُن یعنی از قسم سوم نیست. إلا به ملاحظت مایت حقق و فی زمنی إلا به ملاحظت خارج یعنی لَيْسَ مِنَ سال سَالِسِ اللَّذِی يُلَاهَذُ ال الْإِنْوَانُ خارجی. در قسم سلو مال خارجی میاد زدن ذاتش بده یا خوبه نمیدونیم حالا این بچه رو زدن یتیم رو زده این یا خوبه این برای چی زده این ولی یه که برای چی زده امر خارجی میخواد و این زدن بچه نه حسنی داره نه داره ما باید ببینیم چرا زده آب خوردن یا خوبه باید ببینیم اگه ماه رمضان باشه بعد. اگه شخص روزه باشه بخواد بخوره بده و اگر اقرراز دیگه داشته باشه و اگه نداشته باشه بعد پس لت س در قسم سایت این تغییررات رو که داریم به کار میبر برای بشه مربون بشه مصنوع که قائل شده به اینکه اگر کسی ننفستی اضاد دیگر کرد نمیتونه بفره به ثومی دومی مونده همان که قائله به که ما جهت محصل نمیخوایم جهت ماصلل مال دومی دو به که ما دنبال رافه می کردیم برای اینکه اقضاج مخصی رو بگیره حالا هم تعبیل خیلی از این باشه به نظرم قاصده تعبیلات باید به همین نه باشه صاحب فصول نباید به وجوه ولی اعتبارات رو می آمود و, و به عبارت نفر یه دو تعبیل دوم که سلیستر لو سلمنا مماشاتن به صاحب فصول و به جمعی فلاصفت الاسلامیین عدم اکانهی ادن ده تن تامتن للباب. اگر قبول کردین که ما با ابن سینا که شوخی نداره اون دفته به وجوه بله اعتبار این ذاتی نیست اگر قبول کردین ذاتی نیست علت تام نیست فلا شکفی کونهی مقتضی له اختزای خوبه که داره این ست درست خوبه نداره هفت درسته که داره نه سای میگه مستحب کردن تمرد بر مولا مستحب کردن این واقع نظر سای فسولین واقعش اینه که تجربی و تمرده بر مولا حساب کردنه باید ببینیم آیا بد بود یا خوب بود محسوسی نیست که حسابت نکرده حسابت کرده بود که این گناه بلا قسمسه هم میشه آفر قسمسه تمرد خود نفس تمرد ببین شما الان از هر کسی بپرسی نگه عبدی بر مولاش تمرد داره نمی پرسن برای چی عبد تمرد بده ابد آبق رو شما توی شغل رو مخوندید که قیمت نداره بخاطی که آبقه بزرگترین عیبه در خیار عیب بخونید عیب بزرگترین عیبه دیگه اگه یه عبدی فراری باشه اینا عیب حساب یعنی ارتکاز برش همینه یه میشه بگیم این مثل آخوره تمرات قومشصد در اگه نباشه که مجبور طولگی میگن لال هفتدا درصدد است. ولاشا که میبان این مختذیم للقبه کلکز چون مختذ رافع صاحب فضل میاد و اینو برمیداره. و لسم این قبل بسم سالست یعنیاف لا یاد کل اقل و فی که عقل باشه با این آب خوردن نمیتونه بگه حسنه نمیتونه بگه قبیح لا کل العقل به ملاحظات ها فی انفسها حسنها ها و لا حسن و قبحش درک نمیکنه اینطور نیست که بگیم عقل همه چیزو درک میکنه در آب خوردن حسن و رو درک نمیکنه حتما جایی میخواد و رو عقل او میتراکرات آب خوردن او حسنه یا قبیه نمیتونه درکش کنه این یک سبب خارجی میخواد یک عامل خارجی میخواد بنابراین اگر نفعی ذاتی بکنی نمیتونه نفعی اقتضایی بکنی و قائل به اعتباریت بشی و بسم رو بگی بنابراین این سه حالا وقت ندارم من تابلو بنویسم که تا آخر اون تو اینها بمونه القبه ذاتی القبه الاقتضایی القبه اعتباری اینها ترتب عقلی دارن اگر کسی اولی رو نفعش کرد نمیتونه قائل به سومی بشه حتما باید قائل به دو بشه خصوصا صاحب خصوص کسور که دو مال راهه میگن. حالا مطلق تفهیم از ارتفاع و قبهری، الان زمان می چه حتی مختص نه تن یوتدار قبها قب بنابراین وقتی مقتضی باشه ارتفاع قبهش مطلقش بر انزمام یک جهتی که قبهاش رو با این یوتدار کنیم، کلکس به متقزم منل انجام نبیین، نو بسیین، نو والیدین و مصالینها. مثل کلکس که مقتضی قب درش هست. ولی اگر متضمن یک مسلحتی باشه مثل نجات یک پیغمبر اشتال نداره و تغییر میداره خب این تا اینجا بنابراین این سه مرحله رو آقاین حفظ کنن سه مرحله رو حفظ کنن این ادامه داره و بنا شد که ما دو تا مطلب رو بگیم یکی در رابطه با که از ظلم بله من از ظلم اون فران میگیم چون هر کس هر باید تمام بشه و جوابش داده بشه. ولی یک بعضی مطالبی بعضی یه ناپختگی تو مباحثات هم آقاین داره. این ناپختگی هست. یعنی جزم به مطالب پیدا نشده. اون مبتنی به بعضی از مطالب نباید بگم. قائل شده به کسی اینکه کست انکسار رو قایل شده آره همین و انکسار رو که قایل شده میشه قسم دوم رو قایله در اعتباریات که قسم سومه کست انکسار نداریم ولی در دومی چرا داریم اگه اون مختصی رو یک عاملی را فی بیاد برداره بر میدن چی؟ داشته باشه داشته باشه ما میگیم اشکال نداره ولی چرا تعبیر به وجوده ولی اعتبار کرد اسم دوم به چرا تعبیر کرد من اصل اشکالم به صرف وضو تعبیرشه حالا مصنع اشکال لوثی برش وارد کرده ولی من میگم اشکال تعبیریه تعبیرش قاصر و این تعبیر قاصر اوثق وسایب رو انداخته به یه وادیه دیگه اون اومده گفته اصلا همه بحثایی که اعلم مثلا وارونه مطرح شده از اون عمر افتاده صاحب اوثق که حالا اونایی که خوندن خوندن اونایی که نخوندن آخرش من بهش اشاره میکنم الان وقت نداریم که اینها باعث شده صاحب اوثق الوسائل یه حرف دیگه زده با اینکه یاد طولایی در تقریر مبانی شیخ انصاری داره با اینکه شاگردش نبوده ولی بهتر از بحر فواید و بهتر از طلایظ و بهتر از دیگران حرف شیخ رو حفظ اشاره میکنم حالا شبهات زیاد تو ذهن ولی مهم اینه که رفت رفت یکی که حضم بشه یکی از مطالبی ما پار سال گفته بودیم و در قطع و زن دوره قبل هم گفتیم اخیرا هم گفته بودیم و آقاینات یادداشت کرده سه تا قضیه ما گفتیم این قضیه ها ببین حضم نشده شبهاتی به ذهن میگذر با اینکه اینا کاملا پخته است. من سه تا قضیه گفتم و تمام مباحث قطع و زن مرتبط به همین میشه خص سه تا قضیه که تو ها مرتصم بشه از یاد نره همیشه به همین ترتیب که دارم میگم به همین ترتیب حتی ترتیبش هم نباید به هم بخوره یا حتی مثالش نباید عوض بشه عوض بشه به هم میریزه مثال اول القطع به ماه و اون کاشفون این مثال اول مثال دوم القطع به ماه و کاشفون خود سوم القطع او به ماهو و مهذ کن و اولی رو آقا داخل پرانتز بنویسن حیثیت اطلاقیه حیثیت اطلاقیه بهش میگن دومی حیثیت تعلیلیه و سومیه حیثیت تقریدیه تض همه مبانی اون قسم اول القطع به ما هو و قطعون تاشخون حیثیت اطلاقیه برای اثبات ذاتیت یه به بکار میره الانسان به ما هو و انسان حیوانون در مقام اثبات ذاتی برای یک شیعه همیشه این یه بکار میره یعنی حیثیت به بکار میره اون اولی برای اثبات ذاتیت کاشفیت براقه است. پس مثال اول معلوم شد برای چی اومده شعن نزول چیه اثبات ذاتیت کاشفیت براقه است. ما منکر کاشفیتش به نحو ذاتی نیستیم قبلا هم گفتم کاشفیت براقه ذاتیه حالا آیا کاشفیت از واقع واقعی یا واقعی که من خیال میکنم اون مهم نیست علا کل تقدیرین کاشفیت ذاتیه با اون قضیه اول کاشفیت رو اثبات میکنه دو تا مثال دوم و سوم. تمام اختلاف ما با تمام علمای اسلام با تمام محاصرین و اصولیین و فلاسفه در این دو تا مثال اختلاف چه هم هست فقط صرف مثال نیست. من این مثال گفتم برای این بشه من چی میگم اینا چی میگم تمام کتب و زبور یعنی از ابن سینا گرفته تا معاصرین همه قائل شدن به یک نحویجی این جمله دوم یک جمله درست و حجیت به واسطه کاشفیت و تصدیحاتش هم در کلمات معاصرین فوق عدد احساء که حجیت به خاطر کاشفیت یعنی اگر چیزی حجیت میشه به خاطر کاشفیتش و اینا رو دو دوتا تاش کردن برای ماها به ذهن ماها و ما اینا رو قبول کردیم با اینچین طور نیست القطع رو به ماهوت و کاشف باشه کاشفیت مداکی برای حدشت نمیتونه باشه الان من قطع دارم به اینکه اینجا دو طبق است سه طبق است حدشت داری یا نیچین میمونن حدشت رو باید بری معناش کنیم الان روزه من قطع دارم و قطع من کاشف از واقع واقعیه حدشت داری اول کنم کار کنم؟ پاشم بردان شبش بکنم نه معنا نداره نه نه اصلا میخوام بگم این کاشفیت هست خودجیت نیست خودجیت رو همین میگن اقلاعیه اگه اقلاعی بود که به زین شما ها میرسید دیگه نمیرس باید بری کنی در خودجیت ده تا تفسیر شده وجوب طبعیت نمیدونم وجوب جری عملی نمیدونم امثال اینها تا ده تا نظری بادن تفسیرش کردن بنابراین حدیت یک امر ذهنی عقلی نیست او باید با شد لذا کاشفیت معیار تام میبره برای نیست خیلی از چیزا کاشفیت رو داره حدیت نداره در خیلی از موارد کاشفیت هست ولی حدیت نیست چرا؟ الان کاشفیت داره دیگه الان اینجا سه طبقه است هم پوشیده است. حدیت داره یعنی در اعتباریاتم در اعتباریاتم من علم پیدا کردم من که این خمر حرامه فضتی یعنی چی یعنی باید یعنی اون یقینا بخاطر کشفیت شه دیگه رد نه الان همه میدونن دروغ حرامه و چرا دروغ میگن کلاف قدرت نیست دیگه ببین وقتی نیست ببین پس حجیت نداره حجیت نداره یعنی نیست. کسی ملتزم و تأخدی نداره ببین کسی ملتزمه به عمل نیست زنا بده پس چرا زانی زنا میکنه ربا خوردن حرامه پس چرا ربا میگیرن کاشفیت نداره چرا داره بابا حجیت نداره حجیت داشت یعنی شخص مسئولیت میپذیرو و معذور بود نیست کسی در قبال محرمات فعلا مسئولیت نداره ندارن نه چی؟ نه دارن یعنی نه مناقشی طوری نکنید قرد ندارید دروح حرامه نه نه. الان میخوام بگم دیگه میخوام بگم که ببینید کاشفیت هست حجیت نداره حجیت یعنی چی؟ داخل پرانتز قایم بنویسن. نه معذریت و در کلامات اومده و ما اونا رو نتونستیم هنوز حضمش کنیم هنوز معذریت و معذریت برای ما هضم نشده دوتا تا کلامه فارسی بنویسید فارسی بنویسید معلوم باشه ما چی میخواهم بگیم فارسیت یعنی مسئولیت به علاقه معذوریت هم شخص مسئول باشه هم معذور باشه هم مسئول هم معذور یعنی همون منصفیتیت و معذیهیته ولی تفسیر نشده چرا چرای دارم میگم فایدهی برش مترتب بره الان ما قطع داریم علم لدونی هم داریم به اینکه تذب حرامه ولی باز دروغ میگیم بنابراین حجیت نداره یعنی چی؟ یعنی مسئول نیست نیستیم مسئولیت نداره. خب مسئولیت نداره دیگه مسئولیت نداره کسی ببین تشتش باشه پا میشون میره آب میخوره یعنی حتیت داره براش ولی کاشفیت مبنای حتیت نیست خیلی از چیزها برا ما کاشفیتش هست کشف شده ولی برا ما حتیت نداره نه من نمیخوام از عرف خارج بشم من همین حرف های عرف میخوام بزنم حرف های عرف میخوام بزنیم عرف نسبت به این چیزهای که کاشفیت براش داره قطعیت قایل نیست یعنی شما مسئولیت و معناشو مصابیه با ابنان و انجام آره آره یعنی شخص نه همون بابا قطعیت رو همه تفسیر کردن معذریت و, و منسیزیت نه حالا این آخر شاهنامه خود آخرش آخر شاهنامه بهتر از اول منش چون اول شرکی میخونه میگونه چیه آخر چیزای خوبی داره کاشفیت من حالا اینه دارم میگم من اینه دارم میگم برخلاف همه همه قائلن بگه کاشفیت ملاک اوتییت من میگم کاشفیت ملاک اوتییت نیست اگر کاشفیت ملاک اوتییت یه اشکالی پنجشنبه آقایین گفتن در ایشون در مسجد جلسه گذاشته بودید یه اشکال وارد کرد خو این اشکال رو احدی جواب نداد تا الان یعنی جواب قانع کنندهای هنوز داده نشد چه متکلمین چه خلاسفه چه اصولیه شخصی قطع پیدا کرده باید رو بکشه چرا معذور نباشه قطع نیست مه قطعش باید حجت باشه ما چیکار داریم این امیرالمؤمنین و اون هم ابن ملجم ما چکار به افرادش داریم قطع داری یا نداره؟ اگر ما قول مشهور رو بگیم که ملاک در حجیت خصوص کاشفیته این شخص باید معذور باشه به خاطر کشف شده براش کشف شده پس چرا حجیت نیست شخص قط پیدا کرده باید این شخص بکشه بکشه چرا قصصش میکنند مگه حجت نه بود قد پس علما چی میگن حوزه؟ ها تمام حجیت اینطوریه میگن آقا معیار در حجیت کاشفیته اگر کاشفیته شخصی که خلاف میکنه جرم میکنه بعدی داره که باید انجام بده پس چرا حسیت نباشه؟ چرا محاخظه میشه؟ مگه حسیت دو تا انصر نداره مسئولیت و معذوریت چرا شخص معذور نباشه؟ کاشفیت میار حسیت نیست چرا به خاطیم کاشفیت عذر عقلیه؟ ما عذر اقلایی میخوایم. و این شخص عذر نداره عذر کجا پیدا میشه به اینکه ما قائل به مثال سوم بشیم القطع به ما و محرزکون حجتون قطع در هر موردی که محرزکیت داره حجیت داره در هر موردی محرزکیت نداره حجیت نداره حالا ابن ملجم با عقایدی که داشته مختزی قطع براش ایجاد شده قطع به قطلم داره ولی معذور نیست چرا به خاطر که محرکیت اختزاییه محرکیت اقتضایی نزاتی چرا اختزاییه چون محرکیت متقومه به دوائیه دوایی نفسانی دوایی وحیانی دو تا دایی داریم در جزوه قبلم هست ولی دقت در تعبیرات میخواد آقایم خوب بخونم هر مختزی متقومه به اختزاییه یا نفسانیه یا وحیانیه نسبت به شر شرطایی وحیانیه من دوست ندارم صبح نماز صبح بخونم ولی خدا میگه بخون باید بخونم دای نفسانی ندارم میل ندارم روزه بگیرم میل ندارم راست بگم میل ندارم راست زندگی کنم دوست دارم دروغ بگم دروغ زندگی کنم ولی دای وحیانی نمیذاره ولی بعضی از مواردم دوایی نفسانیه دوست دارم دائی نفسانی اینجا من تشنمه باید آب رو بخورم هر مقتضی متقبمه به یک دایی و دائی منحصره در دو دوتاست یا نفسانی یا وحیانی. نفسانی همون عقلی حجت باطنی و وحیانی همون حجت ظاهری وقتی اینطور باشه ما محضرکیت رو از باب مقتضیات بدونیم یعنی چی؟ یعنی اختیار مکلف در اشتخیر اختیار مکلف دخیله حصول قد برای ابن ملجم سالب اختیارش نیست باز اختیار داره بکشه یا نکشه و تشلیفش رو اختیارش میره نه قدش قد پیدا کرده باید بکشه شم قد پیدا کرده یزید قد پیدا کرده ولی سالب اختیارش نیست اختیارش باقیه لذا محضور نیست چرا به خاطر این مسئولیت هم داره مسئولیت و معذوریت شخص با حصول قد نفسی مسئولیت ازش نمیشه چرا به خاطر این از باب مختزیاته مختزیات 99 درصد دخیل درش ما میگیم قدر موجه 99 درصد ولی 1 درصد باز به دست خودشه باید اختیار کنه کشتنه یا نکشتنه خوض غثن وشکر و ادامه داره و اینا رو اگه کسی اینجا نکنه، باید پرت و پلا بگه. اینا رو خوب هضمش کنید. که ما غیر این را اگه بخونم. الان تمام کتابهای کلامی رو بخونید یا جواب به شبهات رو نمیتونن جواب بدن. به خاطر اینکه قطع رسائل هنوز هضم نشده، چیت معنا پیدا نکرده، بین ذاتی، اقتضایی، اعتباری هنوز و ذهن ما تفکیقی حاصل نشده اینا را آقاین حضر میکنم مباعثی کنید دفت کنید تا ادامش شنشالله همین مثل ادامش شمه فردا ادامه شو میگیم مثلا. ساعت بعد که مسجد مال مکاسب محظمه ساعت بعد شما آقاین مباعثات رو به نازم. که ما اون ساعت مباعثه روزی یکی از این مباعثات رو بریم راستش من فکر کردم که من میریم با هر الان بله خوبی کنیم اونا رو برده چی؟ اسکنش هم اسکنش که هر چم بده اسکنش کنه حال امروز این که تا هر اخت هر اختیز متقربنده داییه این که